قصه های هزار یک شب شبه چهارم چون سیاد به افرید گفت تا ایا نبینم باور نکنم؟ افرید دودی گشته بر هوا بلند شد و به خمره اندر فرود آمد. فلحال سیاد مهر بر سر خمره گذاشته بانگ بر افرید زد که بازگو یکنون با تو چکار کنم؟ افریت خواست که بیرون آید به در آمدن است و دانست که سیاد او را زندان کرده و مهر سلیمان نبی آن نهاده است. پس سیاد رو این خمره را برگرفته به کنار دریا شد. افریت گفت چه خواهی کردن گفت تو را به دریا خواهم افکند که تا ابد در آنجا بمانی افریط بنالید و گفت مهر از سر خمره بردار و مرا رها کن که به پاداش نیکو خواهی رسید سیاد گفت دروغ میگویی و مثل من و تو مثل وزیر ملکیونان و حکیم رویان است و آن این بوده که یونان و حکیم رویان. در زمین فرس و رویان ملکی بود ملکی یونانش گفتندی و در تن آن ملک ناخوشی برس بود که اتبا از معالجت آن عجز داشتند. روزی حکیمی سال خورده به آن شهر آمد که حکیم رویان نام داشت. و لغت یونانی و فارسی و رومی و عربی و سود و زیان گیاه ها و برگ درختان نیک بدانستی پس حکیم چند روزی در آنجا بماند و شنید که تن ملک برست دارد و اتبا در علاج آن عاجز شدهاند. برخاسته به پیش ملک یونان شد و زمین بوسیده طبیبی خود را بر ملک عرض نمود و گفت ای ملک شنیدم که تنت را ناخوشی فرو گرفته و تا کنون علاج پذیر نگشته من میخواهم که معالجات کنم بی که تو را شربتی بخورانم و روغنی بمالم ملکیونون در عجب شد و گفت چگونه می‌توانی بی‌دارو و شربت معالجات نمودن و اگر چنین کنی تو را بی‌نیاز گردانم و آنچه که آرزوداری برآورم اما چه روز و چه هنگام معالجه خواهی کرد؟ ای حکیم در این کار بشتاب تاب. حکیم رویان زمین بوسیده به منزل بازگشت و به معالجت آماده شد. روز دیگر به پیش ملک آمده گفت امروز با گوی و چوگان به میدان همی رو. چون ملک با گوی و چوگان به میدان شد حکیم رویان پیش آمد و چوگان برگرفت به ملک داد و گفت چنین بگیر و به قوت بازو بر برگوی بزن تا دست و تنت خوی کند و دارو بر دستت نفوذ کرده تنت را فرو خواهد گرفت. آنگاه به خانه باز به گرمابه شو و پس از گرمابه زمانی به خواب که بهبودی یابی و سلام. در حال ملکیونان سوار گشته چوگان به کف گرفت و برگوی گوی زد تا دست و تنش خوی کرد. حکیم رویان دانست که دارو بر تن او نفوظ کرده گفت اکنون به خانه بازگرد و به گرمابه شد ملک به خانه رفته به گرمابه شد پس از شستشوی از گرمابه بیرون آمده به خسبید چون از خواب برخواست دید تنش از ناخوشی پاک گشته به سیم سفید همیماند. ماند شادمان و خرسند گردید روز دیگر حکیم به بارگاه شد و زمین ببوسید و به طرف بساط ایستاده گفت تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد. وجود نازکت تازرده گزند مباد. سلامت همه آفاق در سلامت توست. به هیچ حادثه شخص تو دردمند مباد. حکیم شعر به انجام رسانید. ملک بر پای خواست او را در آغوش گرفت و در پهلوی خود بنشاند. پس از آن خانهای تعام بنهادند و خوردنی بخوردند و تا پسین به صحبت و منادمت بنشستند. آنگاه ملک دو هزار دینار زر و هدیه های به حکیم داد. حکیم به خانه بازگشت و ملک خورسند نشسته به کردار نیک حکیم سپاس همی گفت. چون روز دیگر شد ملک به دیوان برنشست و حکیم نیز به بارگاه آمده زمین ببوسید. ملک او را در پهلوی خود جای داد چون حکیم خواست بازگردد ملک هزار دینار زر با خلعت ها و هدیه ها بدو داد ملک را با حکیم کار بدین جا رسید و اما وزیر ملک مردی بخیل و بدخواه بود چون بخشش های ملکیونان را به حکیم رویان بدید بدون آورد و بدخواهی او را در دل گرفت و به پیشگاه ملکیونان رفته زمین نیاز بوسه داد و گفت ای ملک. بندگان درگاه را فرض است که ملک را از آنچه ببینند آگاه کنند و پندی را که سودمنده است بازگویند. ملک گفت پند بازگوی. وزیر گفت پیشینیان گفتند هر که در عاقبت کارها اندیشه نکند برنج اندر افتد. من ملک را در طریق ناسواب می بینم که بر دشمن و بدخواه خیش چندین عطا و بخشش می و از این کار بسی حراس دارم. ملک چون این بشنید به هم برآمد و رنگش پریدن گرفت از وزیر پرسید که بدخواه کیست وزیر گفت حکیم رویان دشمن جان ملک است ملک گفت چگونه بدخواه است که بی زحمت معالجات مرا از رنج چنان ناخوشی خلاص کرد اگر من او را انباز مملکت و پادشاهی خود کنم هنوز پاداش صد یک نکویی او نخواهد بود گمان دارم که تا این سخن را از رش گفتی و همی خواهی که من او را کشته پشیمان شدم به دانسان که ملک سند باد پشیمان شد چون قصه بدین جا رسید بامداد شد و شهر زاد لب داستان فرو بست